سعی خیلی تکامل کرده بجونه هم هم هم. مسئولیت و مسئولیت دشوار و سنگینی رو برامده شما در حفاظت از فرهنگ شیعی برداشته شما با عنوان روح نخبه استاد وظیفه بزرگی رو برامده دارید این نکته به دارید که فرهنگشی یک دانش دا یه فرهنگ درون است. یعنی بر خلاف دانش های دیگه که شما اما کم بیاریم مثلا در تکنولوژی در پزشکی در حتی با اون میتونیم از یه جایی فارد کنیم به دست بیاریم توی مباحث فرهنگی و معارفی خودمون فقط و فقط باید متکی به خود باشیم یعنی هیچ جایی هیچ مننتی هیچ فرهنگی نیست که ما بخواییم از ما حتی کمک بخوایم یعنی اونها اگر سنگ روی سر ما نگذارند مطمئن باشید که کمک ما نمیکنند. پس شما متولی و مسئول فرهنگی هستید که باید روی پای خودتون بیستید. خدای تباریخ و این وظیفه رو در این روزگار برای شما قرار داده بنابراین باید توانایی های لازم، مقدمات لازم رو برای این کار در خودتون ایجاد کنید. آماده باشید برای این مسئولیت سنگین وظیفه خودتون رو بدون تحمیل کنید و آمادگی های لازم رو به دست بیاریم خب اگر وزیفه شما تبدین و ترویج معارف نیست و رقیب و بدیگی هم برای این کار نداریم یعنی فقط باید روی پای خودمون بیستیم اولین پرسش اینه که مراد از معارف دینی چیست معارف اسلامی چیه یعنی چه آموزه هایی چه معرفت هایی رو میتونیم با پسوند اسلامی و شیعی معلقی کنیم به نظر میرسه که در این اختلافی نیست که رکن اصلی معارف اسلامی و معارف شیعی آموزه های قرآن و صندت یعنی آموزه هاییست از, از قرآن و صندت میگیریم حالا معارف صحیحه دیگری هم ممکنه باشه، معارف عقلی باشه، معارف منطقی باشه، معارف ریاضی باشه، دانش‌های دیگر، دانش‌هایی که واقعا کاربردی هم هست. اما پسند اسلامی بودنش منوط به اینه که گره بخوره به قرآن و سنت. خب قبل از اینکه اسلام بیاد فرصفه ایونان، تو خیلی حرفای خوبی هم داشته اینطوری حرفای بدی دوشته. نه حرفای خوبی هم داشته ولی ربطی با اسلام نداره. ما الان وظیفهمون حتی این نیست که معارف عقلانی رو به دیگران برسانیم ما وزیفه هویتمون جایگاه و شخصیتمون، که اسلامی و شیعی رو به دیگر هم منتقل کنیم اگر مردم هم به من و شما اعتنام میکنن به خاطر اینی گمان میکنن که ما معارف موجود در قرآن و سنت رو بلدیم بخوایی به اونها منتقل کنیم و الا معارف عقلی معارف ترسفی معرفت های دیگه الحمدلله انقدر متوضی داره کسی ام از ما ها رو نداره خب حالا سوال اینه که شما که نسل این گونه هستید و این وظیفه مهم رو به دارید دارید، دیل کردن معارف وظیفه شماست آمو و آموختن آموزندن معارف دینی و اسلامی و دفاع و ترویج و تبیین اینها به شماست چه مقدار من و شما به عنوان طلبه که تبقیه ازمون میره با این معارف آشنا هست آشناییمون با این معارف چه مقداره که وزیفه یه و ترویج و نحا دین اون رو در جامعه براخته داریم اون در چه سطحیه؟ از از چقدر چیز بلدیم رواجه به معارف دینی که بعد میخوایم اینا رو به دیگران منتقل کنیم مقصودم از معارف دینی فقط فقیخ نیست خیلی گسترده تر از فقیخه یعنی همه یه آموزه های دین در حوزه های متفاوت اینا میشه معارف دینی اقاید و باوربای دینی جلده چه هست احکام شرقی هست اخلاق هست آداب اجتماعی هست سیاست و تفسیر و تاریخ و سیره هست سبک زندگی مطلوب هست همه اینا چه معارف دینی ما چه مقدار با این معارف آجنا هستیم یعنی توقعی که جامعه از ما دارد که بتوانیم معارف اسلامی رو به دیگران منتقل کنیم در همه این حوضه های گسترده و گنابون و متنبه از ما یک جایگاه بیجهی برای ما تصویر میکنه و نقطه دیگر این که ودفی سنگین زیادی هم براقه ما قرار میده این مقدمه مقدمی دوم رو یک سوخنی رو از مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزاه فراکم بخونم و بعد بیه اتراغ بحث اصلیم میدونید که ای کتاب ایزاه الفواعد مرحوم فخر المحققین شرح خواعد الاحکام مرحوم علمه هلی پدرشون هست ایزاه الفواعد فیشر یه خواعد فیشر مشکلات خواعد یه پرکی رو در اواخر کتاب قبائل و لحقان مرحوم علامه هدنی مصرح کردن راجع به دیه عقل و, و به یه روایت بیه استناد کردن روایت اینه روایت میگه علی ابن اوراهی من عبی همید فرزال عمید سن یعقوب من عبی مریم من عمید جعفر علیه السلام قال هم دا امیر المومنی علیه السلام هم نخو لا یخمال حلال آقل الا الموزهر تسائدن راجب این چه ای که بر احضی هست چه مقدار هست اینجا یه ای اختلافی از بین علماء که دیات کوچولو و کم و بر خود فرده بر احضی عقل نیست استنادشون هم به این روایت مرکم فخر محقق این به این روایت که میرسه میگه که به حاضر روایت یعنی که اشار علیهت حد قدسان داخته را به قوله هنها فیها ضعف میگه مرمومه النامه در کتاب خواهید این روانت رو ضعیف ضعیب شمال چون که ابن فضان در ترقش ابن فضان هم خطعی نید و اما فیلم مختلف و در کتاب مختلف پجعنه ها فیلم موسط اونجا گفته موسط حالا این جمله رو دقت کنید میگه ثم لما فرعت و علیه تحصیب فیلمرت ثانیه فی طریق الحجاس سنت سلاس و اشتین و سب وقتی که در سال 723 در سفر به هجاز اندخال مسافره من کتاب تحضیب الاحکام رو برای بار دوم برای می خواندم ساعت روان حاضر روایه از این روایه پرسیدم گفتم که این روایت از شما یه جامعیه ضعیفه یه جا میگی موسقه ایشون گفت که نه اون نظر نقایی بینید که ضعیف کار با این بحثش ندارم کار با این صحبت مرکوم پخرون معقیقی دارم میدونه که مرکوم پخرون معقیقی مشهوری که میگن قبل از گلوه مشتهد بوده سال 723 هم 41 سالشه یعنی 27 سال از اجتهادش گذشته. وجوده بعد از 27 سال که از مدت هشاده گذشته کتاب تحصیب الاحکام رو برای دومین بار در خدمت مر داره میارم و داره ما بحث میکنه با مر معلم اونم در کجا توی سفر سفر به حج سفر عمره سفر با ماچر سفر او باید هم داشته تحذیب رو میخوندید حالا سؤال من از شما کتاب تحذیب و کتاب کافی اینها میراث حدیثی ما هستند که سنت رو به ما منتقل میدن شما به عنوان پروه نخبه شما به عنوان حسابتید حوزه خانون ها و آقایون کتومی که شما همه کتاب کافی رو یعنی هر شده اصول کافی نه کل کتاب کافی رو از اول تا اخر حالا قرآن رو به حاطر مارم بزن نکنم خب یه دست قدم برن بسن کتاب کافی مهمترین میراث مکتوب حدیثی چی است؟ در دوره غیبت سورا نشسته شده یعنی مجموعه کلی کلا امرش در دو دوره غیبت سورا از اساتیدی که ازشون روایت نقل کرده اینها معمولا دوره حضور رو دوره امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی و حتی امام جواد و بعضا امام رضا علیه السلام رو در میراث حوزه حدیثی قومی که از سخت مدارس حدیثی دوره خودش شده در همون زمان در قوم و ری و بغداد منتشر شده معمول علما چه بغدادی، چه قومی، چه محدث، چه متکلم این کتاب رو من اجل کتب شیعش مداره مخصول بر روایت فقی روایت دیگر هم داره یعنی قصول کافی و روزه روایات غیر فقیه خود روایت فقیه هم این نیست که مثل کتاب تحضیب و فقط به روایت فقیه پرداخته باشه یعنی اینقدر کنارش روایات معارفی دیگه داره یعنی از حدود نزدیک به ده ده و ده هزار روایت فقیه سه تاش به طور کامل رفتی با فقیه و حکم شهرگی نداره روایت مع خب شما که وظیفه دفاع از آموزه های دین رو به عهده دارید و این وظیفه خودتون انتخاب کردید برای شما هم قرار داده شده نسل آینده ما هم هستید و یه زمانی انشاءالله همه سوالات و پرسش ها و شبهات به شما منتقل میشه میفرمایید که هیچ کدومتون کتاب کافی رو کامل نخوندید. پسا چی می دفاع دفاع کنین چی می خواهی تربیم کنی؟ چی می من این پرسشی که از شما کردم در طول حدود اجیده سال گذاشته جنسال سال 1184 تو هر جمعه طلبگی که پنجاه نفر ست نفر گاهی بیشتر بودن این سوار رو مطرح کردم. و شماره رو حساب میکنم یعنی تا آلا از 7600 نفر این پرسش رو کردم میرام 100 نفر هم هر رو دید میشین پس 7700 نفر پس من تا کنون از 7700 نفر اصاعتی که یا طلبه های درس خارشخون و حتی اطاعتی رسائل و مکاسه بود درد خارج دیگه بالاترین ترازی که ما داریم این پستش رو کردم از 7700 نفر فقط 6 نفر کتاب که کافی, کافی رو خونده بود به طور کامل از این 6 نفرم دو نفر اسمانی بودن که اخباری بودن گفتیم شما اگه نمی بهتر بود قدلن ضرر نمی اما حتی من حساب بکنیم به نظر شما این باعث تأثیف نیست که جامعه علمی ما تلده های ما که همه هویتشون برمیگرده به قرآن و سنت کتاب اصلی حدیثی شیعه رو کمتر از یک هزارمشون خوانده باشند. این درد رو باید کجا بود؟ به کی گفت؟ دیگران این گونه نیستند من همین پرسش رو سال 1391 در افغانستان و طلبه های سنیم ازدن یک کلاسی داشتیم شیعه های سنی ها با هم بودند بعضی مثل این اون کلاس ما بودن الان دوری طالبان به ریاست هم رسیدن این که جدیدن نیموندن بیش هشت نفر سنی بودن چهار نفر شیعه 28 نفرشون سیح بخاری رو همه 12 حافظ قرآن بودند حالا میگم گم می رسید اونجا کم کم 12 تا حافظ قرآن بودن. 8 تا 8 نفرشون حافظ قرآن و سیح بخاری بودند 5 نفرشون حافظ قرآن و سیح بخاری و مسلم فقط هم حفظ نبود اصلا یه دوره هایی داشتن دوره ختم بخاری که اصلا من گفتم که یه دوره میخوام بیام ختم بخاری رو ببینم اونقدر سیستم آموزشتی قدی و زیبایی داشت اینها کتاب سعی بخاری رو خوانده بودن اشکالات و شبهات و سعی بخاری هم خونده بودن پاسخ هایی که علمای خودشون داده بودن خوانده بودن یعنی سه مرحله پیش رفته خب دوره تحصیلیشون هم کتانتر از دوره تحصیلی ماست ما, ما الحمدالله دوره تحصیلی حوزوی پایان ناپذیر ندیم و اینکه که ازرایل بیاد بگونه این دوره رو پایان بده و این دوره پایان پیدا میکنه ولی یک هزارم افرادمون کتاب بخاری رو گفتم اونها معمول کسانی که 7 8 سال بودن سئید بخاری رو سئید بخاری خودشو رو خوندن متعنت رو به اینکه حالا عزیزانی که مقایسهی کار کرده باشن اصلا کتاب کافی شریف ما قابل مقایسه با سئید بخاری نیست مثلا مقایسهش فقط با این خاطر با هم ترازشون متفاوته اونهاونه خب پس از کافی که چیزی آیده نشد یه سراغ کتاب دیگه طبیعتا با جوابی که شما دارید من نمیتونم دارم سراغ کتاب های بزرگتر مثلا بهار و رو مصدر کنم بعد بیر سراغ کتابای های کچلو و جمع جور نهجل بلا رو به طور کامل آ یه نهجل بلا هر کتاب جمع جور کچلوه هرچی بشن زیاد نیست به درد منبر و سوحن و مغاد و به همه جا هم میکاره زندگی و تبک زندگی و زندگی آپارتمانی هم به دردش میکاره چند نفر از شما همه که نفر بلاغره از اول تا آخر خوندید؟ خانوا یه نفر آقایون آقایونم هم یک و دو و سه و همون روند طبیعی طلبه ها این سازگاره از اون 7600 تایی که پستیدم قدودن 3 درصد طلبه ها نحرول بلاغه رو به طور خامد کندن 97 درصدشون دیدی کتاب نحرول بلاغه رو هم نخوندن نمیگم که مثلا خوندن، بحث کردن، شروع رو دیدن به مطالبهت اعتراضات نه یه دوره خونده باش حداقل اول تا آخرش رو یه قرائت یه گوششون خورده باشه واژه نصر البراهه رو مرور کرده باشن خب اینم میبینیم که خیلی کم درس داشتن یعنی در واقع ما ادعای انتقال آموزه‌های قرآن و حدیث و آموزه‌های اسلام معارف دینی رو به مخاطبین داریم ولی خودمون هیچ چی بلد نیستیم آقای بشینی رحمت الله علی ایشون یه بار می گفتن که ما موقعی که جوان بودیم دوره طلبگی مون برای اینکه ادبیات خوب بشه ها خود برای این که ادبیات خوب بشید یک دور نحث البراغه رو با دوستانمون اول ما آخر می کنیم. هر تابستان البته من نگاهشون نگاه ادبی نگاه بوده اما مثلا آقای جرداخی مرسیه ایشون متایبهی داره با همین آقای زائری 10 سال قبل از مرگشه به نظر مصابه مال سال دو هزار ایشون میگه من تا حالا دویست بار همه گه نمشل خود. یا ابن عبل در شرح خود به دویست که بیس و که, که راجع به حضرت میگه وقتی سوره هر و رو صحبت رو کردند، ایشون میگه من در طول پنجاه سال گذشته بیش از هزار بار این خود رو خوندم هزار بار و هر بار که خوندم یه نکته جدیدی یاد گرفتم یعنی صرف قرائت نبوده به اطلاعاتم افزوده شده خب یک مسیحی اینگونه عمل میکنه یک سنی اینگونه عمل میکنه و ما مثلا 90 و چند درصد طلبه ها و اساتید و نخبگانمون نفش و بلاغه رو کامل نخوندن حالا این سوال پدید میاد که چرا این مشکل پدید آمده؟ اشکال کار در کجاست چرا ما اینقدر بیگانه ایم با میراث خودم؟ در دلایل متفاوتی داره یکی از درامل اصلیش به نظرم اینه که ما انگار احساس بی نیازی میکنیم مثلا نیازی نداریم حدیث بخوانیم؟ این احساس بی نیازی انسان رو تقیام میکنه این انسان انسانه لیت خواهر ار یعنی اگر ما احساس کنیم نیازی نداریم به این نزلی هم نداری که این رو بکنیم با طلبه که صحبت میکنیم یکی از خانمه به نظرم اشکار بود میگن که خب مدیریت برای ما مدیریت حوزه برای ما برنامه حدیث خانی و حدیث دانی مطالعه, مطالعه قرار نداد. این اشکارشون یعنی ما مسلمن. مسئولین حوزبی ما چه دوره قبل چه دوره حالا اینا مغزه من رو به مدیران حوزه میقوم هم به حضرت آقای حسینی بوشهدی که قبلا بودند و هم به جناب آقای عرافی این رو خصوصی گفتن که ما در این زمینه برنامه ریزامون مغستر هستن حالا اونا که مدیرند و ارشد حتی اینایی که برنامه ریزی برای شما کردن این رو خدمت آقای برادرانم گفتم یه سری از اساتید حوزه یا خراسان بزرگان آسان خود و غلای غم اومدن واقعا قدم بزرگی برداشتن پونست نفر تلوبر رو جمع کردند، برنامه‌ریزی ریزی کردند، که اینها بیان یه مدرسه تابستانی داشته باشند. سه گروه کردند، یه گروه فقه حصول یه گروه فلسفه و کلام یه گروه ادبیات و تفسیر قرآن همزیده کجا هستن اصلا؟ من منبع معرفت اینا دیگه برنامه و اساتید و بزرگان و اغلای قومت عقلاشون رو هم بیگنگه شد تازه اومدن در کنار ادبیات، نه قرآن تخصیل رو قرار دادن در که مطالعات قرآنی خیلی میگسترده تر از تفسیر؟ اینقدر پیشرفته تر هست که اصلا قرآن قیاس نیست اما این حدیث که حدیث اصلا کلا فاده نشده یعنی اصلا توی مجموعه اینا اینا احساس نکردند که طلبه ها باید یه سری مطالعات هندسی هم داشته باشن به علوم و, و فقه و کلام و ادبیات رو گفتن نیاز دارن ولی ظاهرا دا طلبه ها نیازی نداشتن قرآن و حدیث مطالعات قرآنی حدیثی داشته باشن حدیث در نتیجه کلا کنار گذاشته شده به عنوان زائدی در کنار ادبیات و تفسیر این حالا یه دو تا بحث هم گذاشتن راجع به این تازه بحثی که اول پیشنهاد کرده بودن دو تا بحث گذاشته بودن یکی آسیب شناسی فهم حدیث بود یکی آسیب شناسی در بود من گفتم که یعنی تطور اینا اینه که همه آخونده همه طلبه ها همه آقای و خانم ها با معارف قرآن و آشنا هستن حالا ما ببینیم مباحث آثیری ها رو براتون عموم کنیم نخوندن حدیث وقتی که سعی نخونده نخودی، اصلا آشنا نیست با این معارف، چی میخواد چه آسیب چندوسی میخواد برسه مزه؟ <تصال> <تصال> خب این مطمئن رو که ما اصلا مقصر شناختیم محکومشون هم کردیم یعنی بیاوند خود بهشون دادیم ولی به نظر میرسه که فقط اونها نیستن من الان توی جمع دوستان نزدیک خودم خب قدم اگه 7600 نفر می پرسیدم دوستان نزدیک خودم خیلی زیاد نیستن حتی ده 10 نفر از اینها هستن که حد یک بار همه یه کتاب کافی رو خوندن اونایی که نحر البلاغر رو خوندن که معمول اینهایی که با مایتو با ترمه نحر البلاغر رو کامل خوندن همه دوستان یعنی اینا جد اون وزینه های عمومی نیست هتا. یعنی سوال عمومی نیست به نظر بلسه خودمونم مقصد الان این از دوستانی که قوم برای با من کار میکنه دواغا اصلا تنم مشجیه هست خیلی شیخ بزرگوار متابده سال 76. این همین قبل که مشهدی بیای ما صحبت میکردیم گفتم من تا حالا دو بار کل کافی رو خوندن حصول کافی رو تا حالا سی بار خوندن الان یکی از از, از که توی دوره خوصول شما شرکت کرده تا حالا ده بار قسمت های خیلی از های روی درست داده توی خوند یعنی این که بگیم مدیریت و برنامه ریزان محصرن بله تخصیر اونها رو قبول داریم ولی فقط تقصیر اونها نیست فقط اونها رو محصر نداریم کمکاری خودمون رو هم بپذیریم یعنی مرحومه های طلاع که میفرمودن بودن ما ها یک دور نهجل بلاغه رو با دوستانمون میخوندیم اون خیلی صالبین که میگم مثلا مال سال 72 و سی ازشان شده ما شروع کردیم دی نهضت بلاغر رو تو ما رمزنام یه دور میخوندیم. مثلا شاید ده سال این ادامه داشت که آدم توی ماه مبارک رمزنام یه دور نهضت بلاغر میکنه. حالا بعض از خود ما خیلی مشکل بود اونا رو صنف میذاشتیم. بعضی مثلا اختلاف بود، اون رو بعض از موضوعات کار و بردی روزانه تو رو حفظ میکردیم. و پس بنابرای خیلی گمان نکنید که ما تقصیر نداریم و فقط مدیران و مسئولان مقصران بپذیریم که هم ما شخصا تک تک ما و هم مدیرانی که برای ما برنامه نمی و هم اساتید و بزرگوارانی که هفت استادی به گردن ما دارند همه ما همه ما مقصر قاصر نیستیم محسن. یعنی واقعا اگر روز قیامت خدای تبارک و تعالی در صحرای محشر سؤال که میخواد بکنه از این سؤال کنه خداوند حضرت الله به که من بیشترین امکاناتی که قد میتونست در یادگیریه آموزه‌های های قرآن و سنت معالف دین در اختیار افراد دیگه قرار داده بیشترین امکانات رو در اختیار شما قرار داده یعنی امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته در طول تاریخ 1400 ساله اسلام و تشرید اختیار هیچ کسی نه شما می کنید مثلا تا صد سال پیش علمای ما نیمی از شبانه روزشون شبانه روزی بود که نور بود و میتونستن مطالعه کنن حالا شما که کسانتون نمیرسه ولی مثلا من چراغ پیستوز قدیمی ها رو دیدم چراغ پیستوز اصلا امکان نداره انسان زیرش بتونه مطالعه کنه تا در نسخه ها مثلا نسخه های امروزی نمود که نسخه های حدیق قدیمی مرحوم جزائریشون میگه من های. اگه آمول بیس شبهایی که روشن بود میرفتم زیر نور ماه مطالعه می کردم. خب اونا نیمی از شبانه رودشون در واقع سخته بوده یعنی در حالی که ما الان دراماتیش در تفاوتی نمی کنه اصلا متوجه نمیشیم شیم شبانه رودگاه اوقات انسان شب راحت ترم مطالعه میکنه. کنه نسخم بر اختیارشون نبوده یعنی الان شما کتابه به هارالانوار مرحوم علامه مدلسی رو ببینین ایشون میگه که مثلا من چنیدم یه کتاب فیخ خورده در مکه هست زهباری که رفته بودن مکه اون رو برای من آوردن فیخ خورده به دست من رسید در حالی که الان شما تمامی منابع حدیثی شروع با ارتباطی که با هم دارن روی کامپیوتر در اختیار همه شما هست روی سایت ها هست یعنی دسترسی شما قابل مقایسه نیست یعنی نعمتی که خدای تبارک و تعالی در امکان استفاده از معارف دینی در اختیار ما قرار داده در طول تاریخ حیات بشر در اختیار هیچ کسی قرار نداده تا حالا حالا آینده چی بشه نمیدونی ساقه دائر دوبار کل زندگیش به تاراج رفت یعنی امنیت اینقدر نداشته خب شما الان امنیت دارید سرمایش و گرمایش و میز و صندلی و امکانات و همه اینا در اختیارتون هست قدم ما آقای آقا حتی نونه خالی برای خوردن نداشتن نه اینکه که خورش نداشتن خورششون که میشون دمک این امکانات در اختیار ما هست در اختیار دیگران نبوده پیش اینا ما حتی توی خواب هم نمی‌دونن که امکانات این قنه‌ای باشه مرحوم آقای علی اکبر قنفاری رحمت الله علیه که کتب عربی رو تصدیق کرده و واقعا زحمت کشیده ایشون خیلی ارادت داشت به مرحوم شهید صدوق رحمت الله علیه این رو برای خود شخص بنده تعریف کرد یعنی توی جلسه دو سه نفره ایشون بگفت من وقتی کتاب معجت البیزار رو تصنیمی کردم اینقدر دنبال کتاب مجمع و زباید بودن که برخضر در اون هست و مجمع و توی ایران یابتنی شد پیدا نکرد کتاب مجمع و زباید و, و کتاب معجت البیزار به همین علت مستند قادر و تخریجاتش مشکل پیدا کرده بود بعد حالا از محکم شیخ صدیقون عقل میگرد که من صبح رفتم سر صبح جمعه و کارم گیر بود. میزنستم چه کنم وقتی برگشتم یک از این بازاری ها من تو حال خودم بودم گفت که مثلا ساعت 8 و صبح در این صبح جمعه گفت دعوتم گفت بیان صبحانه پیش ما چاشونه یک یعنی. من رفتم اونجا وقتی نیسته بودیم گفت یه سری کتاب برای من, اومده من اینا چیه هست هستند زبان شما عربی نمیفهمه ببینید که اگه به دردت بخال بردم می اولین کتابیبار کردن ممان زوا. این رو با کرامت شیخ توسی مثلا کل کرامت شیخ صندوقت سر می خب ما از الان شما میبینید که همه کتاب شیعه و اوسانی هر چه کتاب که نسخه های خطیش تا آرامد جدید به دست آمده اینا برنامه نافزارش در اختیبار من و شما هست. و بزنکار نمید مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علی جدای از کار پژوهشی که کردن دو بار تا جلد پونزه بهارانوار، بار جلد پونزه قدیل بهاران که طراحی کرده ایشون 25 و بوده که توی صد شد درشت منتشر شده بیس و در واقع بردن هر جدی کرده شد به چماشه تا جلد بیس و پنجش یعنی چه نویسش پیش نویزش به خطه هست اما پاک نویسش یا موبیزهش تا جلد پونزه بیشتر نیم مردی از مجلدات یعنی کل بیت و پنجلد و پیشنویسه چست به خطه ایشون پاک نویش شدهش برق از تا 15 جلدش که هست برقی از جلد ها بار یعنی دو نسخه به خطه ایشون الان هست یعنی شما وقتی نگاه میکنید ایشون حدودن به این کتاب 110 جلدی که الان بخواییم چیز بکنه حدودی 250 جلد کتاب و حد خودش نوشته و میونه حالا ما مسلما کمتر از 10000 هزارم یک بار همه نوشته ایشون رو خوندن این تو مطالعات حدیثی واقعا لنگ میزنیم دو مشکل. حالا شما تا رو مشکلی حالا بفرمایید شما تو شما و چشم نیزدید ولی اشکال که هست هر استاد یه تبلیل بره. شما می کنم های چرا تو حدیث کانک یه استاد دیگه میاد کنم های چرا تو برآن کانک یکی میگه چرا کتابای شیه متحریه رو یکی میگه چرا میراج ساده رو نمید هر کس چه کتاب رو تبلیل و علوم و کتاب هم که کتاب هم زیاد امروان که نمیده یه یه باید نه غیر تا من قرآن که باید بخونید. قرآن و سنت به عنوان منبع معارف. اینو همه باید بخونن. شیخ مصطفیان، شیخ فو به باید بخونید. اما اینکه یه طلبید سی سال، چهر سال توی حوزه کار کرده باشه ادعای سروازی امام زمان رو داشته باشه ادعای راهبری جامعه رو داشته باشه اما میراث اصلی حدیثی ما رو حتی یک بار نکنه باشه این مثل که کنون آتارپیک شوشی حتی هم تشکیسه مثل به فارم. فارسی هم در ویژه این شنیدن این در ویژه مالی فارسی خوشی مالی. حالا ای که ما اومدیم با چالش جدی مال این خب این چه کاری می همیشه یکی استاد میخواد دیگرش. آشنایی از معلم خوبی شود که دوست و همچنین از روی این به با من این و این ما سر به می ما هر خبر بعد بنده حالا در ادامه میخوام به همینم درزن تازه اینی که ما میگیم که شما میگید ما چی بخونیم این که بیس من مرحله اول کار همین کار ادبیشون رو نکرده یعنی کار hazırlığı بخواد بکنه واهمش از این بر کارو اما این مقدمه یعنی این جزء بدیهیات اولیه است که طلبه‌ای که وظیفش فهم آموزه های دین و تبیین اون برای دیگرانه این وظیفه اولیه ماست این طلبه باید در مرحله اول مطالعات حدیثیش کامل باشه باید یه سطحی از مطالعات تاریخی رو داشته باشه ما میبینیم مجموعه های ما واقعا از منظر آشنایی با میراث تاریخی شیعه در حد سفر یعنی وقتی میبینید که حتی کتاب نهج البلاغه که منبرم به دردشون میخوره توی زندگی شخصی هم به دردشون میخوره توی زندگی خانوادگی هم به دردشون میخوره فقط سه درصد افراد یعنی نهج البلاغه رو خوندن 97 درصد اساتید ها نمیگم طلبه های مثلا مرحله اون سال چهار و پنجم تحصیلی این سآلی که من پرسیدم معمولا از طلبه های ترازه بالاست فقط سه درصد خوندن و کسانی که با کتاب کافی آشتن هستن مطالعه اولیه یعنی فقط مست نهجه رو بکنه بعدن وقتی که به اشکار بسید وقتی که اختلاط هدیستید تعارض هدیستید نیازه به کل برخواد داشت بره سراغ مراحله بردی ماید رقصه ای اون وقتی که کتاب کافی دارال حدیس تشهر شده بود کل بچه های دارال حدیس رفت محضر مقام معظم رد خب این کتاب موقع قبلت نیکرد تا اعزه بشه برای اشون فرستاده شده بود اشون هم این کتاب مگفت که کنار سردجانهی من من خیلی مطابعه بهشون میبینم اشون گفتن که اگر کتاب کافیه دارال رو کسی بیاد دقیق بخونه فقط این رو متابعه کنه نمیخواد سختی بیرانم باشه به کتاب رو هم مراجعه نکنه ایشون میگفتن که حتی توی رجال مشترید بشه به صحبتیشون علتش اینه که معمود افراد رجالی و مباحث رجالی در ارتباط با مباحث تخصصی رجالی که در کتاب کافی وجود داره توی اینجا مورد حوجه بوده مثلا تصیفات توی اونجا معلوم شده بحث حیلول و سند معلوم شده تحلیهات معلوم شده افراد رجالی اگه بستر موردشون بوده یه انجام شده شروع دیگه هم اومده که الان اینجا قرار داره خب اگر کسی واقعا روزی یک ساعت روزی یک ساعت کتاب کافی دارال حدیث رو مطالعه کنه فقط روزی یک ساعت سه ساله تمام میشه تجربه داریم ما یعنی چیز عجیب قریبی نیست این رو چند سال پیش گفتیم روزی یک ساعت شما بخونی حالا اگه مثلا توی ایام درسی وقتتون چنده تا بهتون جبرم روزی یک ساعت روزی یک ساعت مطالعه هم نمیخواد درقیق باشه بخواد با تا گاب و ماهی پیش بری نه مطالعه معمولی که مثلا س سه ساله این بپایان می روشن خیلی که کار خواستی حالا اون که دیگه با این گرونی کاغذ شاید جدیدی که حقوق عباسی شاید کرده برای ما به نظر چهار مگیر نیم شده دوره یعنی هم در نیباید انتشارات روز تعیشنبه گفتند که یه رسنا ام آمده بیرون اما نه نیاز نیست تو برنامه نرفداریی هست برنامه نداری دارول هریث از برنامه نور هست ایهقات مطالکنه این ننفسل جدید که با برنامه کامپیوتری هم چند بکن. نه مشکل اصلا این نی. مشکل پول هم نیست با با نحد برناع کهقدر گرون نیست نح برناغلشون بکن آا آستی نیست. اصلا کار نیست اینها اون ترا یعنی اون احساس بینید اون نیازه برای شما پدید نیامده برای ما پدید نیامده این که میبینید چطوری شما میرید خیلی که از عزیزان رفتن برنامه های آفیس گرد و یاد گرفتن دارن کار میکنن چرا؟ چون میبینه که تو کار خودش نیاز داره اما مقالف قرآن و حدیث و اون احساس نیازه نیامده وقت نعیمده باشه می دادیم گردن متولدیان، گردن ارساتی گردن برنامه بیزن آقره خودمونم کار نمی <تصفيق> یه نقطه دیگه بگم که دلتون بیشتر رسوسه ما این کمکاریمون در کنار پرکاری دیگران خیلی با آدم رو احساس برشنگ میکنه ازش الان بروه شیر شناسی دانشگاه های اسرائیل مجموعی دانشگاه اسرائیل سرپرستشون رو یه آقایی به احتدار به نامه تن کلبرگ همین کتابانه سیدن تاوت رو نوشته دوازده امامی رو اون رویات دوازده امام رو کار کرده یه پیره مردی حدود همون دهکتار سالشه ظاهرا مثلا حدود سال پنجاه تو ایران هم بوده این حتی با نسخه های خطی حدیثی ما آشناست یعنی تو آدرس هایی که میده خیلی عجیبه این ها. تو آدرس هایی که میده گاهی اوقات میگه می نسخه فلان مثلا دانشگاه تهران این نکتر را اضافه داره اونم در این نیست که اهل بکشی فرموزند اون دنبال اینه که چطوری میشه معارف دین رو خراب کرد چطوری میشه یه آتویی گرفت یه ایرادی گرفت و مجدیری کرد از معارف دینی شایرداش همی بونن. سال گذشته ما خدمت آیت الله مددی بودیم یه شاگرد مشترکی داریم بنده و ایشون آقای کومیل راجانی که توی ایران بود الان انگلستانه آقای من دادی می فرموندن که کومیل. کومیل داره یه پایرنامه می نویسه قصد دعاورش این آقای ایتان کلبرد می, می گفت که وقتی ایتان کلبرد من قمده از خوندم با شما ارتباط دارم گفت من نوارهای میراث مکتوب شما رو گوش دادم اطلاع مددی یه سید نوار در روزه 150 جلسه یه ساعت و به راجب میراس مکتوب شیه میراس حدیثی شیه خیلی بحث های واقعا ناب و بیبدیریه بی نظیره. از هر هزار طلبه حوزه یک نفرش نفرشون هم برگوش ندهد وی ایتان توی اسرائیل ایشون گفته من نوارهای شما رو گوشم یعنی با مطالب حدیثی شفاهی حوزه علمی قومم آشنا خب وقتی اونها با این شدت دارن کار میکنن و ما با این سوسی طبیعتا یک نسل دیگه دو نسل دیگه چه بلای صد معارف میان یعنی شما مبینید که اینها بنابر ایرادگیری خدشه مجدیری تعریض شبه افکنی در همه دمینه ها دارن های ما هم که چیز نخوندن فضای مجازی برای شبه افکنی و شبه آفرینی کاملا آماده است خب این نهاد مطرح میشه پاسخوه یا صافی که مثلا قرار مياد بعدش هم موقعي مثلا با اين بوسوي وجود مثلا در ساريو يا داد داشته باشيم چي كنيم اول يعني اينجا بعد صافي بفرمایید چي بش چيجوري بعد ها از وسایل چي بداريم قرارش از اول تا آخر كنيم اسكي تمام شد صافي حالا قدود 10-12 سال پیش برنامه بود آقای مرادران گذاشتم توی بروه شما اون بحث هفت باید چهیر رو برای کنباه های ما گفتیم و الحمدلله خیلی خوب پیگیری کردن یعنی خیلی از اونها مراحل رو بزروندن و مراحل رو خوب پیش رفتن این که حافظه حدیثی افراد باید حقیقت بشه این مشکل اولیه ما یعنی این دیگه بدیهیه بدیهی اینها به استدلال نداری اصلا شما نمیخواد اون قلعه ها رو ببینید من یادم من بچه که بودم مثلا حدود سال 6-7 کارم بود ولی میتونستم حروف رو بخونم مدرسه نمیرفتم با مرحب پدرمون از شما میرفتن مدرسه فیضیه نماز نماد من بایشون میرفتم خیلی از طلبه ها اون موقع کتاب سپینت البحار اون جلدی قدیمی دستشون بود من الان که نگاه میکنم حالا که خودم به صورت کار شدن میبینم که اگر کسی واقعا یک دور سپینت البحار رو بخونه با امهات مباحث معرفتی حدیثی تاریخی ما اشناس این که حالا تقون چقدر چقدره؟ اینو یه حفظی ديستم. اول برای مراحل بعدی. اولين مرحله اول کردن حافظه حدیثی افراد تقویت بشه. توی اون حافظه چه معنی در بین بودیم که بگیم, که بگیم که افراد با هزار ساعت خواندن با منابع حدیثی، حوزه های متفاوت معارف حدیثی با گونه های متفاوت روایات از ائمه متفاوت نه فقط روایت امام صادق مباغل علیه السلام رو بلد باشیم و اون ذرافت های موجود در اونها آشنا میشن این واقعا با هزار ساعت کار قابل دستیابیه اما اگه کسی بخواد مرحله بعدی رو کار کنه من توصیه میکنم کافی هن کسی مقایدت باشه تمام کتاب کافی رو از اول تا آخر کتاب کافی رو بخونه الان که داشتیم میبادیم با آجابه میباقی صحبت این بود که کتاب ایمان و کفر کافی یک کتاب روشمندی در اخلاق ایمانی متفاوت با مراد رست آده است و مبتنی برای نظریه است که این نظرگیه قابلی کشف کردن هم هست پس بنابراین هر کسی از حالا به خودتون احض کنید گفتم اگر کتاب کافی رو چیزی روز یک ساعت مطالعه سریع حتی مطالعه دقیق به این مناکی بخوایید بزنه را خطاب نه. یعنی که روزی اه... یک ساعتی که چیز می‌کنید روزی یک ساعت ده سفه بخواید اگر این گونه باشد سه ساله کتاب کافی ها می خونید اون موقع می بینید که اصلا چه دریچه ها چه درواده های معرفتی جدیدی به ذهن انسان باز می جالبه اینم تجربه شخصی خودمه مثلا شما ممکنه یه باب حادث رو دارید میخونید. بعد می توی زندگی شخصیتون تو سوالی که از شما میپرسن، توی حواظت اجتماعی که روح میده توی همتا حمله روسیه و اوکراین می‌بینی که این نکته ای به درخود شما دیروز خونده بودید به ضمن اعلام سازگاره توی منبرتون توی درستون همه اینا اثر داره پس بنابراین اگر کسی حال کار زیاد نداره اون حرفودی بودی چه منبع هزار سال طرف اگر نه بیشتر میتونه وقت داره واقعا بعد اونجا بیا سراغ کتاب شریف کافی و همه کتاب کافی رو بخونه خب اینطوری میشه مرहमी اول کار یعنی اون حافظه ی انبار کردیم. سال گفتم دور سال 96 انبار و یک دور کامل من کردم از نگاه بعد مدتی کار میکردیم کامل نیست خودش بلا هم شخصا تناقض بلاقه نگفته داشته. بلافقه برنامه اینه که اینا رو باید ملاحظه بکنیم. بعداً از عطاران فرمودن که بیشتر به خصوص تو کافیه کارو این بعداً صدره اعلامی آیکناخودش هم مشارکت کردیم که ایشون جاما و احاجس رو درشته بدن. متفق که اینطور استفاده که توری جاما رو احادیس رو نشه هر شخصه باید یه کتاب جدیدتر ایجاد. پس ما اور میکردیم به نتیجت که برای احادیث و نس... نس... همین بود که همین رو روایت ترضیه اصلا لازمه به کتاب نوشته شده وسائل در حوزه احکامه در حالی که قرآن و حدیث قرآن و سنت فرافقی هستن فراحکمی هستند شما در حوزه متفاوت و متعدد حوزه های متفاوت و متعدد معرفتی چه اخلاق چه سیاست چه تفسیر، چه تاریخ زندگی امامان چه سبک زندگی نیازه به این داره که منابع رو بخونی بنابع اگر کسی بخواد صرفا کار فقی کنه وسائل و شیعه و جامعه آزشیه براش مفیده ولی اگر کسی بخواد بی از اینها یعنی پراتر از فقه کار کنه نه خواید همه اون کتاب ها رو ببونه خود مرکمهایت الله بروزهی رحمت الله که یکی از قسطوانه های حدیثی در دوره خودشون بودن یه لزوهی کوچیکی ما ازشون منتشر کردیم اله حدیث و مقلوبه شاید برخوای از عزیزان دیده باشن ایشون وقتی که مزرح شدن در قوم قلما اجازه که نامه‌ای بهشون نوشتن و در واقع نامه اختباریه نامه ظاهرش سواله 12 تا سوال مطرح کردند راجع به 12 روایت متن و سند و همه اینا رو قرقاطی کردن که ببینن ایشون همونجا جواب بده اینو ببینید موقع تبحر و تخصص معلومات لو ورودش اونجا معلوم میشه مخصوصا مباحث اخلاق ایشون یا مباحث رجادیشون اون قوتش در اونجا معلوم میشه یعنی این کاری که جمال الهادیز ناظر به روايات فقهی و اشکالاتی که ایشون بر کتاب مسائل شیعه داشته اصلا ما میگیم که کتاب مسائل شیعه برای یک حوزه خاص حکم شرعی ازش در میاد در حالی که کتاب کافی این گونه نیست کتاب کافی از کتاب عقل و دنگش کتاب توحید و کتاب حضرت و کتاب ایمان کفر و هر کار برات پرخیش یعنی شما وقتی که آداب المعیشه کتاب المعیشهیشون رو بینید کتاب کافی رو می بینید که شاید 20 درصد 30 درصدش نازل به حکم شرحی باشه 70 درصدش مباحث جنبی حکم شرحیه که ایرها توی کتاب بسای رشدی یا توی کتاب درصد و رخ چرا؟ چون حکمی ازش برد... فهمیده نمیشه شما توی اونجای کتاب جناعه کتاب کافی راجع به فرشتگان نمخاله که روح انسان رو به بایدی و سلام اون تقریب بکنن خب این محکوم شرطات روسی هی که شکل اینها رو در تحضیب نیارده ساهم مسایل هم, مسائل هم رو در مسایل نیارده محکوم آقای برنزی هم در جامعاتیس نیارده در حالی که از منظر فکری شما این فرشتگان که روح انسان رو به واجو سلاخ و منتقل نکنه خودش یه بحث جدیه اتفاقان توی مباحث عادی و عرفی و عمومی هم مورد سواله خب شما بدونید که بحث از این مرحله وجود تا نگاه اوقات با وقت از علوان که رو به رو میشیم اصلا خبر ندارن که این طور مبحثی در میادات اجزی ما هست یا راجبه اون موطه گیری منفی دارن یا حتی این موطه گیری منفی هم نداشته باشن نداشته باشن آشنا نیستن آشنایی مرحله اول کار این رو نمیشه اشتنابی حالا بعد خانمان بالا قرآن که حتما با یک قرآن اصلا این بدیل نداره پس مناوری قرآن رو باییه چیزه یه چی تو رقابت نیست داشت قرآن مبذتر این کار کنیم زیادم کار کنیم یکی کن از علمه های قوم شم وقت بشه رو نهاره کرد شما گفتن که مثلا من روزانه یک شد قرآن میخونم ولی روی یک آیه کل روز متمرکزم مرحوم آیه شهری رحمت الله علی خب این روز خیلی حسلاتش به قرآن و حدیث بین از بود یعنی در دوره ما من که آدم مثل ایشون ندیدن حافظه خیلی قویی داشت هم حافظه قرآن بود و هم خیلی حدیث خونده بود و احادیث با ها تو ذهنش بود یعنی خیلی راحت پیدا میکن ولی از روز 24 ساعت ای بود میتونیم بگیم 14 ساعتش رو هنوز کار میداد یعنی تا ما آخر جلسه ای که با داشتیم حدود یک ماه قبل از فوتشون بود که توی بیمارستان هم بود اون جلسه ای حضوریشو برگزار کرد گفت که این جلسه نباید تعطیل بشه فقط به صورت مجازی بود و اسمون رو روی تخت بیمارستان فعلا عکسش هم باشه الان جلساتی برگزار بشه بنابراین قرآن جای خودش اما ما زمان زیادی داریم هنوز زمانی چه داریم حتیب. نظرم اینه که اگر یه تفسیر ساده و جامع جور مثلا ده مثل تفسیر نمونه حضرت ایوب مقاله این خونده بشه بعد اون حداقل اون حواشی چهل چه منظر رو این رو ببینید اون رو بخونید یعنی با میراث حدیثی ما هم آشنا بشید حتی اگر مثلا توی بحث تفسیری هم زمانتون کمه گوزیده یه تفسیری براتون برای تون خوبه البته اگه بخوایی تخصصی کار کنید تفسیر علمیزان تفسیر مجموع با دارم تفسیر ابن آشور میانه این ست تفسیر رو حتما باید ببینید اینو گوریزی ازش نیست ولی مجموع الویان میزان، و تفسیر ابن عاشور این ستارو رو واقعا انسان باید ببینه و کار بکنه بدون اون چیزی خب این اما این که حداقل کاری که miras حدیثی رو یه مقدار خونده باشیم ما کرده باشیم مرحله اول همون 70 چهل منزله مرحله دوم کتاب کافی کتاب نهتر بلاقه مثلا توی اون حرفازی چهیل منزل خیلی از مراحلش گفته شده کتاب نهتر که کتاب زمانگیری نیست خیلی روحه که انجام بده حالا همه اینهایی گفتیم شد مرحله اول مطالعات حدیثی مراتب بالاتر و تحسسی تر مثلا اعتبارسنجی حدیث خود دانش فقه الحدیث مباحث فقه الحدیثی شیوه های شرح حدیث شیوه های حل مشکل الحدیث که حالا جلسه فردار رو گفتن راجب شبهات محتوی نحران بلاقه یه مقداری کار بکنیم بررسی اختلاف حدیث تاریخ حدیث مدوش شناسی حدیث شبهات حدیثی کار بردی کردن حدیث توی جامعه اینها خیلی نیاز به کار زیادی داره من توی مسجد محله و توی قوم شمب شبها نحران بلاقه میگم ده دیگرم بیشتر نمیگم پرسیدیم به این جمله امیرالمومنین. امیرالمومنین در نامه شهسون نوه نفت تا وحذر دارن کل عملن یعرضاه و صاحب و یک رحمه به آمد المسلمین وحذر کل عملن فسر و صاهی بهود نفت سببیجم وحذر کل عملن ازا سائلند و صاحبه و انکره و امیتر دارمه من در اون جمعه اول که کلا عمدان یه از, را از راه انساهای بولو چیزی که آدم برای خودش میپسنده ولی برای دیگران نمیپسنده برای اینا گفتم که این هایی ما تو زندگی امروزیمون پیاده بکنیم همینطوری فقط نمونه هایی که میشه توی زندگی کارورزی باشه حدود هفته دو سه چهار مورد سریع. حالا چه من میگفتم چه اونها میگفتن ما نوشیم یعنی توی زندگی عادی ما هم اثر داره اگر این گونه عمل کنیم به همین ستا وحزه که در نامه 69 آمد امر بکنیم خلیم 60 درصد اعمالمون مطابق قاعده خواهد خب این کاربردی کردن حدیث و حضور حدیث در جامعه در میان مردم در زندگی شخصی و فردی اینم یه رو مهمه مهمیه پس افضون بحث مطالعات حدیسی مباحث تخصصی حدیس رو هم بهیری کنید الحمدون اولا توی دوره های جدید یعنی توی اولا این بیس ساله اخیر خیلی مباحث حدیسی رشد فوقلادهی کرده کتاب هایی که نوشته شده دارون حدیث توی سه گذشته 20 جد راجع به مباحث تخون حدیث و مبانی فهم حدیث و گونه های متفاوت و سبکشناسی و من بشناسه منتشر کرده برای وزارت آموزش شاقی همین نوشته شده من به نظرم برده اگر کسی در موری امودی اینها رو بخونه دستت مطلوبی با مباحث حدیثی و تاریخ حدیثی آشان میشه حالا مباحث تخصصی ترش رو باید توی مرحبه بعدی دیگه کنه حالا زمان ها چقدر من دوست دارم این تیام مقام معذب رهبری رو که به مناسبت تاسیس دارالحدیث حدیث ایشون سال 74، و یعنی ده سال پیش دادن براتون رو براتون بکنم این پیامه یعنی شروع این پیام کار کرد و پیام عادی نیست یه چند دقیقه این رو بکنم بعد برای سوالات شما رو جواب میگن نمیشن که بسم الله الرحمن الرحیم کلام نور و امروکم رشد. این تک تک این گملات رو دقت کنید در اهتمام احتمام به حدیث حسان است تماس به کتاب حکیم همین برترین وظیفه ای است که علم دین بدان مکمل است. اهتمام حدیث پس از تماس به کتاب حکیم همیت برترین وظیفه ای است که علم دین بدان مکمل است. این استظهار از انوار علم و حکمتی است که از کلام و تعلیم و هدایت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین از اهل بیت آن حضرت علیهم السلام saute می‌گردند و خرد و اندیشه انسانی را دستگیری و راهنمایی و زندگی بشر را برخوردار از سلوچ حکیمانه و خیرتمندانه میکند. و چنین این است که حضرت عدی به جابر میفرماید یا جابر بلاهه لحدیس و تصیب و حومن حلال فی حلالن و حرام خیرن لکمه ما تلعت علیه شمسو حتی تغرب در تاریخ علم دین جمع حدیث و حمل و فهم و درخ و آن یکی از بزرگترین فصول است و با یک نظر حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی یا همه آنهاست از این روسی آلم دین چناز بزرگی اقدم شیخ کلینی رحمه الله در مقدمه کتاب کافی شریف حدیث،, حدیث را برابر با علم دین دانسته و آن را معیار و, و ایمان به شما را وده است دقت و بارش بینی فقها و علمای برجسته سلف در امر حدیث و چگونگی تحمل آن و شرایط وقوع و روایت و دیگر آن چه در این باب بر اهلش آشکار است از همین اهمیت و عظمت شعنی که در باره حدیث و تاثیر آن در سر نمیشه فرد جامعه می گفته شد سرچشمه میگیرند امروزه درباره باره حدیث به تدقیق و جداسازی سره از ناسره راست از دروب مسلم از مشفوک و نیز به تحمل در فهم معضلات و مفاد و مضمونهای اساسی در آن تدبیر یا نسبتیابی آن با کلام الله عزیز حکیم و شرق و بست عالمانه و محققانه و نیز به نشر و همگانی کردن آنچه همگان را به کار خواهد آمد و بسی خدمات و تلاشهای دیگر نیازی مبرم و سازماندهی شده وجود دارد در کنار این همه پردازش علم رجال بررسی تاریخ صدور حدیث و سیر آن کسب آگاهی از آن زمینه‌ای که صدور هر حدیثی را لازم یا راجع ساخته است و جستجو از مضمونهای مشابه در کتب حدیث حفه سنت از جمله کارهای لازم و ضروری است بعدم تشکر میکنم از آقای ریحانی که این را تشکیل دادن توی این چند نظری که الان خوندنم به نظر میاد زرامت های زیادی وجود داره یکیش همون که حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی یا همه آن هاست بعد بله الان الان یعنی داران همی قبل از این که ایشون این پیام رو هم بدن کارا رو شروع کرده بود بعدتان هم آره ما الان کارهای خیلی خوبی انجام شده یعنی کارهایی که بعضی وقتها آدم خبته میخواده شد را مخاطب اصلا با این ارتباط برقرار نمی کنه. نه کارهای خیلی خوبی انجام شده مزمونهای مشابه دکات و باید زنده سنت رو کار کردن اون مباحث دیگری هم که توی اینجا هست اینجا اما دو سه که برای شما به نظرم مهم بود این جمله اول که احتمامه به حدیث پس از هم که به قرآن برکرین وزیفه است که عالم دین بدان دان است. و این هم که حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی و همه ای آنهاست و بعد اون ذراکت که توی مباحث حدیثی میشه مصرح بشه خب این هم به عنوان نظر یک دیمشنات یک کسی که افتونه بر محیط حوزدی با محیط اجتماعی هم سرکار داره یعنی مشکلات و موزلات جامعه را میدونه ایشون میفرماید که باید این کار رو کرد اما حالا جدایی از اون حرفای نام ای گفتیم واقعا در این سی سال چهل سال بددن قلام گرایش به حدیث و حدیث و حدیث دانی آبل مقایسه با سالهای قبل نیست ولی هنوز تا اون رسیدن به جایگاه شایسته خیلی فاصله داری و این هم وظیفه من و شماست ما باید این کار رو بکنیم یعنی گفتم منتظر نباشید دیگران اگه بخوان کار رو بکنن بیشتر خراب میکنن این پساره توفت های من من به سر وقت همون کردم که بر شما قدید نمیم خب اگر سؤالی نیست با یه سلوات خاتمه بدین و سلام علیکم و رحمت الله هم. نه واقعاً راقی کلون خیلی اندکیه یعنی سیده